بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وسید المرسلین و وصحبه اجمعین اما بعد نماوزه رمیش مش نبی امتدلواتک قرآن با الله نیا میکنیم حرفش سخنش سخن میشنویم سخن الله رمیش نبی تا ک خودمون رو آماده بکنیم با اون روز رسا خیزمون خودمون رو داریم آماده بکنیم به حساب و کتاب داریم آماده میکنیم به قبرمون خودمون رو آماده میکنیم اون لحظهایی که من بر سر ما میستان از ما سآل می پرسن من ربک خودمون را آماده میکنیم به اون روز رساخیزی که الله در میده می اسرافیل در سور بدمه اونجا در روز رساخیز حاضر بشیم و جلوب پروردگاه برای حساب و کتاب پیستی. داریم پرونده اعمالمون رو سنگیم میکنین پرونده اعمال نیکمون کسانی در روز قیامت پرونده اعمال را به دست راستشون میگیرن و کسان هم پرونده را به دست چپشون میگیرن جز کدوم دست از این دو دست خواهیم بود مرگ حقه رفتن از این دنیا حقه این دنیا دار است این دنیا دار قرار نیست دار استقرار نیست کل من عليها فان و يبقا وجه ربک ذل جلال وال اکرام کلو من علیها فان، این دار فانیس، همه باید بمیرن، همه باید از این دنیا برن، همه باید بمیرن، حتی این زمین باید نابود بشه، تمامی خلائق نابود میشن، وجهت سکرت الموت بالحقه ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق مرق حق السكرات مرق حق وجاءت سكرة الموت بالحق مرق برتكتك موهو حق حق بربيغمبران الهي حقه الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمي إنك ميت وإنهم ميتون تم ميري تم بايت بميري فماردهم هم بايت بميرا چون الله حي قيومس الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إن همون مرغي هاس كتازش فرار مي كاردي مي كارسي أسيك و بري إن همون مرغي که تو خودت رو براش آماده نکردی، آمادش نبودی. تو ازش فرار میکردی مشغول دنیا بودی. این همان مرگی هست که الله جل و علا بر هر خلقی از مخلوقاتش نوشته که بیا در این دنیا سرای امتحان، پرونده اعمال خودشون رو پر کنن و بعد از این دنیا با توشه از دنیا برن. چه توشه ای؟ چی نوشته در این توشه این خودت هستی که توشت رو با چی میخواهی پر بکنی؟ با نماز؟ با تلاوت قرآنی؟ یا با گناه و معصیت و دوری از الله و لحب و لعب با چی میخوای پرونده اعمالت رپور بکنی؟ تو هستی که الله این اختیار را به تو داده که پرونده اعمال خویت رپور بکنی و جاعت سکرت الموت بالحق مرگ حقه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در مرض وفاتشون سرشون رو گذاشتن روی پای ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سرشون رو گذاشتن دارن عرق میریزن وزن نشانه های حصل خاتمه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرماین عرق پیشانی مؤمنه رسول الله صلی الله علیه وسلم داره عرق میکنه پارچه رو داره اون عرقش رو خوش میکنه میگه لا اله الا الله ان للموت سكرات حديث دار صحيحين بخاری و مسلم ان للموت مرگ سکرات داره سختی داره درد داره رنج داره رنج انسان از این که زن و همسر و بچه و دوست تو رفیف روبل میکنه جون کنده در این دنیا مالی را به دست بیاره الان کل اون مال و دارایش داغه ها میکنه از این دنیا با توشه خالی داره میره با اون کفری داره میره که جیبی هم نداره دارن تو چار گوشه ای او را میخواابونن که جز خودش کسی دیگه جاش نمی باشه باید تک تنها اونجا بخوابه بله مرگ حق خودش با به تنهایی بر دوش هم میکن بله میان روش نماز میکنن تک تک ماهارومون نماس میخونن تک تک ماها تکبیرات دا از این دنیا بر ما میخونن الله اکبر و فاطخی میخونن الله اکبر و سلامات ابراهیمی سلامات میفرستن الله اکبر و دعای رحمتی میکنن و بردوش هم میکنن و با اون کفن سفید میبرن وحمل میکنن تا اینکه ما رو در قبل بذارن و خاکی بر سر ما بریزن لحظه سختی است اون لحظه که انسان دوباره زنده میشه در قبل والله حق اون لحظه که انسان زنده میشه مرگ انسان یک زندگی دوباره است مرگ رفتن نیست که دیگر زندگانی پس از نباشه زندگی برزخی و زندگی روز آخرت اون روزی که دیگر بعد از اون روزی نیست این زندگانی زندگی برزخی و زندگی بعد از حشر در سرای ابدی ما اومدیم که بیکاریم حالا چیکارش مهم نه همونطور که گفتم ان للموت سکرات مرگ سختی داره مرگ واللهی سخته اگر رسول الله صلی الله علیه و سلام داره میگه سخت فراقش سخت ام المؤمنین عایشه با دمعان میگید دیدم که رسول الله صلی الله سخت داره درد میکشه رنج میبره رقیش میکردم روش قرآن تلاوت میکردم معوذات میخوندم قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میخوندن میدیدم به رسول الله صلی اللہ که اون درد اون کمتر بشه رسول این بر خدا خدا رسول صلی الله علیه و سلام این جوlever سر ضرورت اللهم الرفیق الاعلى بارنا را رفاقت خود از ذکیه خدا در بهشت اعلی را می خوام اللهم الرفیق الاعلى که رسول الله صلی الله علیه و سلام به دیدار پروردگارش بره اللهم الرفیق الاعلى ما به دیدار کی میریم ما به دیدار کی میریم ولحذی که روح منقبض می گنند روح منسن منجدا می کنند به دیدار کی میبینیم با کی حشر میشیم با نبیین با صدیقین و شهدا و صالحین یا با مغضوب علیهم و ضالین با گمراهان با ستمکاران و تبهکاران جز کدوم دستیم چه توشه ای را پر کردیم با خودمون بردیم مگر اینه که ما زندگی بکنیم و ننویسن فرشتگان الهی واللهی مینویسن تک تک کلمات که بر سر زبان ما میاد مینویسن ما یلفظه من قول الا لده رقیب عدید سخن نمیگی حرفی نمیزنی مگر این که فرشتگان بر شانه راست و چپت پرنده و دفتر به دستشون و بنویسن مینویسن تا اون لحظهی که سکرات مرگت بیاد تا اون لحظهی که مرگت فرابرسه و جاعت سکرت الموت بالحق اون لحظه مرگ لکل اجل کتاب هر کدوم از ما اجلی داریم کتابمون فرابرسه ملک الموت مهلتی به ما نمیدن والله ملک الموت با سربازانش منتظر امر الهی اند لحظه برسه و در اون جایی که هستیم روح ما را از جدا بکنن ولی چطور روح ما را جدا میکنن چطور میخواهیم روح ما را از جدا بکنن؟ اینه که ما باید تصمیم بگیریم برای خودمون ما هستیم که با تلاشمون با عبادت و طاعت تصمیم میگیریم که چگونه از دنیا بریم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودن در خبرستان رسول الله صلی علیه و وسلم میگه «هادم اللذات این که خوشیها را از بین میبره این مرگ را زیاد یاد بکنید اکثرون من ذکری حدم اللذات و در وقت حدم اللذات اون چیزی که خوشیها را از بین میبره زیاد یاد مرگ بکنید زیاد برید قبرستون الا فانها تذكر الاثر الا فزور القبور برید قبرستون تا بیاد آخرت بیفتید تا اینکه خودتون آماده بکنید رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودن فرمودن میدونید روح مؤمن چگونه قبض میشه چگونه فرشتگان میگیرن روح مؤمن وقتی که فرشتگان میان از اون فرشتگان بهشتی همراهشون اون کفنهای بهشتی با اون بوی خوش بهشتی میان به سراغش روحش رو همچون آبی که از کوزه میچکد که انما یخطر الماء من فی السقا همچون آب دراحتی میکشند همچون آبی روحش را دراحتی میکشند سوال پیش میاد مگر ما نگفتیم رسول الله صلی الله علیه و گفت مرد سختی داره اون سختی جان کندن نیست اون سختی میان این که دوستان و احباب را داره رسول الله صلی الله علیه و ترک و رها میکنه نه سختی کشیدن روحش هستنش سخت اون لحظه برای مؤمن که دوستانش رو فراق بگه و از این دنیا بره خداحافظی باش اون بکنه لحظه سخته ولی جان کندن مؤمن راحت جانش رو همچون آبی که از کوزه چکیده میشه روحش رو همچنان راحت میکشن کفنش میکنن روح هم کفن میشه روح ماست روحی که الله. در تكتك مها فريده روح مقدس ونفخت فيه من روحي روحي أسوية الله جل وعلا إنصار مكادم كاد الله بروح زندكا روح کفن میشه روح دست به دست میشه توسط فرشتگان فرشتگان میرن بالا به هر آسمانی که میرسن از کنار فرشتگان که رد میشن به اون فرشتگانی که روح به دست گرفتن به اون کفن که بالا میبرن میبین من ها دا؟ این کیه؟ فیقال فلان ابن فلان, فلان فلانی فرزند فلانی فیناده به احسن اسمائه الادی کانه یناده فی الدنیا با بهترین نامی که در اون دنیا صدا زده میشد میبرند در آسمان میزنن در آسمان باز میکنن فرشتگان سپس در آسمان دیگری تا آسمان هفتم نز الله جللق عل میبرند میبین بارلا ها این بندت فلانی فرزند فلانی با بهترین نام صداش میزنن الله جللقعل می گوید اکتوب و کتاب یفی اللی ای نام این بندم رو در پرونده بهشتیان و علیین بنویسید بزرگواره باره بزرگوار بوده با بزرگی زندگی کرده خودش را نزدیک مصیت و گناه نکرده دور بوده از گناه و فحشا و منکر اسمش را در پرونده بهشتیان هم بنویسید این بهشتیه روحش را بر به قبل اون لحظه هست که منکر و نکیر میان بر سرش زنده میشه او را می نشانند می نشیند در قبل چونه؟ الله و عالم سرای برزخه دیگر این دنیا نیست دیگر اون مجرد قبری نیست که تو اون تو در اون خوابوندی بلکه اونجا دیگر اون جسد اون روح در سرای برزخین منکر و نکیر میان بر سرش اون زنده میکنن مینشیند. بهش میگوین مربک پردردگارت کیست؟ ما دینو دین چیه؟ می‌گه الله الله، یا الاسلام و من نبی‌ت میگه محمد صلی الله علیه و سلم کتاب چیه؟ میگه قرآن که رسول الله صلی الله علیه و سلام بود، اون بحثی که بر ما تلاوت شده بود، قدرش رو دونسته، قرآن رو تلاوت کرده. این شخص است که جواب میده. این شخص بعد از اون الله جل و علا تصور میده به فرشتگانش که دری از بهش را به سوی قبرش باز کنید قبرش رو بگشایید این دعایی هست که ما در دعای میت می اللهم نور قبره و وسع مدخله واکرم نزله بار الله قبرش نورانی بگردان قبرش نورانی میشه با نور از بهش قبرش وسیع میشه گشاد میشه اللهم وسع قبره وقتی که میت دارید نماز میخونه این دعا رو دارید بیخونه براش و وسع قبره بالله و اکرم نوزوله اکرامش کن بردگارا اون لحظه که تو میاد اکرامش کن با نوشتن اسمش در پرونده بهشتیان اون لحظه که اون روحش به بهشت میره و الله اکرامش میکنه با میبه های بهشتی روح است. اون روح مؤمن بعد از سآل منکر و نکیر که پرواز بکنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین یاد میکنه اروح المؤمنین کتطیری یعن من شجر الجنه اروح مؤمنین همچون پرندگان پرواز میکنن و از میوه های بهشتی میخورند از رودخونه های بهشتی میلوشن از اون خمرش، از اون عسلش، از اون رودهای آب و پاک و زلالش الله اکرامش میکنه این دعایی هست که ما میکنیم برای مردمون اون لحظه‌ای که میمیره اکرم نزله این اکرام الهی به اون مؤمن چه باز کرده شخصی را میبینه در همون قبر شخصی زیبا با زیبا با تنی آراسته خوشبو رو بهش میکنه میگه تو کی هستی میگوید من عمل صالحه عمل صالح را اینچنین مجسم میگونه براش الله جلد علا در همون قبرش اعمالش را میبینه خوشبخت و سعادتمنده بار الله ها. ما را همچنین خوشبخت و سعادتمند کن روح من راحت حق بشه بار الله روح سفید از ذریع بریم و روح سفید حشت بشیم بار الله ها. پرونده را به دست راست بده بار الله ها. اما روح گناهکار و تبهکار و کسی که ستم کاری کرده ظلمی به این و ستمی به این و در حق خودش نه چشمش را از گناه نگه داشته و نه گوشش اما اون شخص اون لحظهی که فرشتگان میان به قبض روحش رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماین فرشتگان میان با و کفنی از جهنم با اون بوهای بد جهنمی او را کفن می کنن. روحش را چنان از جسدش میکنن همچون پنبه خیسی که از لابلای خاری کشیده میشه اون روح تطعه تطعه می گرده الملائکت و الملائکتو بازتو ایلیم اخرجو هم فوسه کن سخت اون روز ملائک بر سرشونشون میزنن ای تبهکار جاندانت سخت باشه با دار و کتک باشه روحش به سختی میکشن با اون کفن جهنمی جهنمی کفنش میکنن دست به دستش میکنن بالاش میبرن فرشتگان صدا میزنن کیست فیقالو فنال ابن فلان فلانی فرزند فلان فلانی فیناده بی اسوه اسمائه اللذی کانه یناده فی الدنیا بابتلی نام صداش میزنن در آسمان هم را میزنن که در را باز براش رسول الله صلی اللہ علیه و سلم این آیرها تلاوت میکنن لا تفتح لهم ابواب السماء در رای آسمان بین نو آدم ها باز, بین ها باز نمیشه بین انسان ها باز لا تفتح عوااب ابواب سما ولاید قولونجن جاش هم بهش بز حتی یل ججعملو في سمن خیاط اگر شطور تنس از سوراخ سوزن عبور بکنه بهفهممایان وارد بهش بششه تا در آسمان بهشون باز بشه ولی هرگز الله جلب ع میگو یا کوکتوم و کتاب عمدیفیسیG در بنداش را در بندده بند تکارام میرین این غیر از تبحکاری بیگاری خوشگذرانی، وقتش را با بازی و بازی دوشی و لح و لعب بر کرده نه با قرآن نه با عبادت در کدوم پروند نامش بینویسن؟ در پروندهی که نام محمد مصطفی ابراهیم خلیر الرحمن هست صالح صالحه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو و عمر جاش در پرونده اونهاست والله سخته الله میگوید روحش را پرد کنید از همونجا به قبرش این جاش آسمان نیست پس سنین روحش را به بر میگردونن اون شخص دوباره زنده میشه در اون قرد او را میشانه منکر و نگیب بر سرش نشستن چماقی به دستن بر رب ها ها لادری خدا کجاست؟ در زندگیش کجا بوده؟ کجا سر به سجدش گذاشته و گفته؟ از سخفر الله و توب و لی کرده توبه کرده از کتاهیش در نماز در قوندن قرآنش چی کار کرده؟ چی داره با خوده؟ ها ها لادری ما دینوک ها ها لادری دینش بوده؟ من نبیوک ها ها لادری نمیدونم کتاب چی بوده؟ نمیدونم نمیدونه نه از قرآن، نه از پیغمبرش، نه از خدایش، نه از دینش نمیدونه چی جواب بده الله جل و علا میگوید دری را از جهنم به قبرش باز کنید تا در قیامت در عذاب باشد تبهکاره، ستمکاره فیعتیه من ریحها ها و زمومه از اون سوزانه جهنمی در قبرش دبی نمیشه و قبرش تنگ میشه تا جایی که سینه هاش در هم فرو میرن فکر میکنید زنده نمیشی مگر ما بشری مگر ما ایمان نیوردیم این قرآنی که اومده به ما بگه خود رو آماده بکنید به روز آخرت مگر آخرتی نیست مگر در قبض زنده نمیشی والله حق زنده نمیشی شخصی رو میبینه چشماشو باز کرده با چماغ بر سرش میزنن که داد و فریادش همه مخلوقات بشنون جز جن و انس همه میشنون جز جن و انس درد میگشن در اون لحظهی که با اون شما بر میزنن شخصی رو میبیند با چهرهی زشت با لباسی زشت زننده نگاهش میکند کی هستی تو میگوید اومدم مژدگانی به جهنم بهت بدم من عمل زشتتم من اون طبخ کاری و کاری. من اون غیبت و چشترانی من اون درو من اون ظلمی که کردی مال حرامی که خوردی اون رباخاری که کردی تو از خدا نمیترسید راحت گناه می منم اون زشتن لباس زشتن و لباس التقوى ذالک خیر بدونیم لباس تقوى خیره اگر می خواهیم اعمالمون لباس خوب برترش باشه باید تقوى و پرهیزگاری را پیش بگیریم والله حق ما در قبرمون زنده می و بعد از اون دیگر سرای ابدیس که دیگر پایانی نداره سبحانک اللهم بحمد سبحان الله بحمد و صلی الله علی محمد و علی محمد